نه نداره من, من با ناشرهای این وقتی قراره که کتاب می‌دم و خودشون کار نکنم. من یک ریال از, از سود کتاب کار هفت و تری. چی از فروش هستم. مثلا به دیاج پنجام رسیده. و تری کاره. شو ناکنی می‌گن به تو جایزهای خواهد می‌گذارم. اگر من زیمی‌سنده‌ی باشم چند تا از مشاوره‌ی که هست. مشاهر کاسر همتا مشاهر رو کتاب جده خودش رو باید کاسر جده خودش رو باید یکی بزنگرم واقعا تیگه کنیست بود حتما بهتون چی میدادم من کتاب مثلا چون من کتاب در خیلی نمیزارم چون زیر دینا نمیزارم کتاباتون همه بودی؟ مثلا من کتاباتون از اون از جدیم خیلی نمیزارم؟ mesela sen asarık ببخشید آرام بابا ای ابراهیمی سلام که شما توی بله بله خان است غیر از همین که چرا چه می‌شه چه زیب بود حالت تعداد کردم خاطر تلفالک زیاده مثلا دو تا آخری در مورد چیزی یاد گرفتم بیشتر در بازاری یا اینا رو بعد باش شد راه درست رو بهش داد شد نامش 10 برابر 20 خبرش رفتم گذاشتم این مورد هم من کلا جلسه بعد روی پاداش میسازم مثلا یه فایده دوباره هست هر هفته میشوام فلاش گیارم یادم میره وقتی من یهو به سمجنگم، یادم اصلا فلش دو سال به همه میدم. یادم اصلا بحث ارتباطات و مذاکره رو من بهتون درس ندادم، ولی فایلشو بهتون دادم. استاتش رو بهتون دادم. کیور به هم ازم درس ندادم، ولی کس شو بهتون دادم. برای روی این مادر ما گفتیم که هر مشتری یک شیبه برخورد به یک قلق داره دکتور ارتباطات این اینکه که قلق مشتری دست من بیاد با هر مشتری باید با یک سبکی برخورد کرد با همه این مشتری نباید یک جور برخورد کرد کنید با همه آدمان نباید مثل خودشون برخورد بکنیم مثل خودشان برخورد میکنن اشتباه میکنن چرا که با همه یک جور برخورد می‌کنم اشتباه می‌کنم. با هر مشتری مثل مثل خودش هم اشتباهه. هر مشتری روش خودش <متحن> روش خاص متناسب با اون برقرار کنه. مناسب اون با, با برقرار نه مثل خودش. <متحن> هر مشتری یک نسخه داره شما. این مشتری بود سخت بود، آدم ریزوی بود، پروتسانت بود. هیر بود، بی‌تنتری بود، تمام این چیزا. داره حال یاد داره. آ، اوسر اینکه با هر کسی مثل خودش رفتار رو مثل خودش داشته. بعد همیشه رفتار خودمون داشته باشیم. خودمون رو مناسب با اون بسنجیم. هم خیلی هم مثال می‌زنم. مثلا شما الان می‌رید جلسه با مثلا رئیس سپاه اینجوری می‌رید، این تو می... سپاه دیگه. اینا مناسبه برای ما همین شرکت خارجی می‌خوام لارجم، همینجوری می‌خوام لارج برم. این دوگانگیه ممکنه یکی تو مکشن یک شتابی باشه بگه که شما ضررویی. بدتر از شما نمی‌خواد. خودت باش. ولی یه خورده باید که جزئی باشه. تغییر باید برای این مشتری مثلا اینجوری باشه. تغییر اینجوری کنه. نباید یه بار اینجا باشه یه بار اینجا باشه. این عدم تعادله به شما اعتماد نمیده. با مناسب با اون مناسب شرحال اون مشتری باش نسخه باشه. اصلا بردین توضیه سبرانه بهش بکنید نرمی و لطبات باید کش نیاز شناسی بکنه نیازه مخشو بهش بسید مشکوک باید جیرونکور کنید این ازاکت باید جیرونکور کنید هم یک یکی قدر بداری، یکی ترشتری این اینکه شما دکترهای طرف پروش دارید پروش هم از دکتر رو هر کسی سعی می‌کنه مناسبه با هوب خودش رفتار بکنه پرونده داره مثل پرونده پزشکی پس adapter CRM چیه CRM رابطه مشتری مدیریت ارتباط با مشتری کانسومر لیسنشیپ منیجمنت و مدیریت ارتباط با مشتری دقیق نرم افزارهای CRM چیکار میکنن همین کارو میکنن یه بانک اطلاعاتی از ویژهی های شخصیتی، رفتاری، روحی، فکری، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج، دنیا اومدن، همین رو میره زیر نرخصاق بعد برای این اساس مشتریان رو مدیریت میکنه. مثلا، بساطه اوتوماتیک تولد همه مشتری رو بهشون تبریک میده. بساطه اوتوماتیک وار، مثلا میگه مشتری که خوشبینن برای میارت... شون این اتباعت ارسال میشه در مقصود این برمانه هستش اشبینه روز زن، به همه مشتری خانوم اسمس میره روز زن اومباره روز مرد به همه شون اوتوماتیک بار روز مرد اومباره دکتر جامنست، دکتر اقتصاده، ایک فروشنده خودش رو میشنست، برسه فرهنگ خودش میاد کار میکنه. اینجا ایرانه. ایران قدار خودشوی داره کنه. آلمان نیست. همه سرجاشون باشن. اینجا هیچ که سر باشن. نیست باشند. اینجا نسخه خودشو داره. اینجا من میخواهم با کسی کاسایی بکنم. بعد رایست و تاثیر بذارم. اینجا ایرانه. اینجا با یه تغییر دولت همه چی عوض میشه. کابین عوض میشه. اگه مشتری من دولتی هم رسکم بالاست. قد مراقب باشم. اگر مشتری های من ارزان خدمان شما دولت هم باید هم باشه اینجا ایران، تو ایران، قلق ایران با دست جامعه با تو اینجا شما نمیدید ما هم فکر یه موضوع نه دکتر جامعه است، دکتر اقتصاده، دکتر احساسات مشتریه اه. ایرانه، ایران یه دکتر احساسات دکتر خلاقیته، دکتر قرارداد، دکتر معام می‌سنجه، بررسی می‌کنه، آنانیز می‌کنه، اتحاط دعید می‌ده، اتحاط می‌گیره این پزشکی پزشکی در اون انجام بده. این فروشنده این چه خصت‌های بارد می‌شته چه داشته در فروشند می‌خواست فیلید چه ویژیگه <تصفيق> ریشه فروش تو چیه؟ اگه ریشه فروش تو مشتری. یعنی ریشه فروش تو مشتری باشه شما فروش بگرده. فروشت بالاست یعنی تو میشناسه. فروشت پایین مشتریت نمیشناسه. فروشت خوبه یعنی مشتری رو میفهمی. فروشت کم یعنی مشتری نمیفهمی. هر آدمی یه دغدغه پول گرفتن داره. هر آدم یه دغدغه برای داره. هر آدم یه دغدغه برای هر مشتری چی چه داره؟ مشتری کو مشتری؟ مشتری کیه؟ کجاست؟ چه امکانات داره؟ چه کار داره؟ چه موفقیت شما توی فروش بستگی به شناخت شما از مشتری داره. چرا مشتری تو می‌شناسی؟ برای اینکه پیش مشتری بدی باید چیکار بکنی؟ چه هدیه بدی؟ <تصفح> چه <تحسر عرش> بدی؟ <تصفح> چه بهش بدی؟ توی تفسی قرارش بدی؟ چی بهش بدی؟ چی ازش بخواهی چی؟ این دیشه ی فروشندگی تو مشتری شناسی و مستخننده شناسی تو شناختی؟ گفتیم چند درست شناخته؟ دو درست, درست, درست شناخته شناخت شناخت شناخت شناخت شناخت شناخت شن میسی زبطورت معاینه بکنیم، آزمایش خون بگیریم مشتایش هاست یعنی اعتماد به مشتاید یعنی, یعنی, یعنی اعتماد به رایت این یعنی فروش فروش پایان نیست، آوازه آوازه یک است، آواز یک قمرکزه رو رو یادم میشه فروشنده فروشنده استخدام بکنید. خوشمزه چه میشه گردش خوشایند چه خوشمزه باشه. یا اصلا فروشنده خوب کیه؟ فروشنده حرفه‌ای داریم ما، اونم ناشی ناشیه. که فروشنده داریم حرفه‌ای. خب. فروشنده ناشیه. می‌گم نیمه حرفه‌ای یا تازه تازه‌کار. آماتور، آماتور. ما تقریباً چند درصد فروشنده حرفه‌ای داریم. خیلی کم، خیلی کم. خیلی، ما نداریم اصلا دلالی درشگاه تدریس میشه دلالی علمی وجود دار تو دنیا اونجا همه دلالی در اقصال فاظه به دیگه یه چیزی میگیده یه چیزی، و ایران نه برای کار تولانی تحرک و پویه. تحرک و پویایی ویژگی گفتم، به خاطر آدم خیلی کمتر فروشنده خوب نشه آدم تحرک و پویه. انرژی و سفر بالا، صبح ساعت 7 یا ساعت 10 یه شکتی قصار آگه ای برای استخدام فروشنده من این گیژگی رو روی منشی شرکت دیدم به منشیه، به تو گفتن جلس های پیش به منشی گفتم به منشیه گفتم شما وانا یه حالا تا کار کردی؟ انا میخوام به شمعت سمعت کارشناسی بشه کار میکنی؟ باید یه انگیزه، گیژون انرژی بسیار بارش کنی، یه انگیزه بشه شدیم از منشیگری اومد کارشناسی، اسمسش اومده بود چون من شکت های که مشابهشون هم. من فروش و فروشنده ها بنا اسمس خب. کاش از فروش خانم بخون اینجا خانم زد علف چقدر؟ خانم میمدان سی میلیون سی میلیون فروش یک روزش بوده که این ویژگی را داشته باشه براحتی میتونه فروشنده بشه همون تحصیلات نیست، توانای کار زیاد تو های مختلف، نگه توی یک آره این معیطه بره انکه من بره. من برم، اینجا نمی توان اینجا و بیشگیم نمی سازه عزت نفس فرامان چه فرقی به عزت نفس و اعتناب و نفس وجود داره؟ این چه ویان چه <تصف> عزت نفس اون برای برای نفس برای توانایی برای که نشون خیلی اصلا ازت نفس ندارم. اعتماد نفس ندارم. اصلا دارم آدم خیلی مهم، قابل دارم قابل ستایش. یا سواد داره. موخش پول ثبات نمیتونه ارائه بکن همشه خودش رو میترسونم پس عزت نفس درونیه اتحاد به نفس بیرونیه توی درون آدم هاست این توی بیرون آدم هاست پرنقشن وجود داره میسترواده کچه ولی اتحاد به نفس کنم یه دوزه تا ما سخندان داشتیم پشتر اخیر یه دفعه گل کردن دکترهای فران دکترهای من مان گفتشین می دونستم ولی عزت نفس عالی سحرونی گفت 20 ولی تو خالی شومنه بسیار عالی ولی تو خالی اتهام نفس عالی ولی عزت نفس درون خودش اصلا این اون داشته باشه دو موافقه کتا میرسه جفتش باید باشه هم عزت نفس و اتهام نفس جفتش کنار هم باشه جفتش باید کنار هم باشه فروشنده هست اگه باید به دست بیاره مثلا فروشنده من میرم فروشنم عزت نفس نداره میام باش صحبت میکنم تامین میکنم انرژی کار میکنیم ارزان من خدمتشون آموزش های خاص بشمیدیم. سمتش رو تغییر میدیم کمکش میکنیم مثلا خونهش یه جایی که خیلی عزت نفسش میاد پایین همون خونهش رو مثلا اجاره میدیم یه جای کمک کنیم. یه جای رحم میکنه خود اونجا قابلیتش میره بالا ماشینش رو میکنیم ماشین خوب بهش میدیم نفس بدهمون اعتاب و نفس داره حالی برعکس ممکن ازت نفسش نفس ها شو داره باید مثلا شما آموشه فروش بذاری، پرزنتیشن براش بذاری تمرین بشوید تا این از اعتاب و نفس شانشون بدید شما با هم باشید یک چیزی قبل از اینه، خیلی این ویژگی رو دارن ولی علاقه به این کار رو اصلا یه دیست باشم، یک درصال فروش هم اصفا می‌کنم بعضی‌ها می‌گن نه میشه پرفروش هم می‌شه می‌شه نه یک درسال ساله یک خونه تا وجودش باشه جهنمش رو داشته باشه این جهنم خب؟ جهنم نه جهنم تو ذاتش این تو وجودش هم بسید وجودش رو دارن یک درسال رو دارن خب غیر از این که دارن یه سری می‌گم یه درم اون کارو میکنه از اون درم نون میخوره ولی عشقی نداره به عشق هم عشق بگید؟ حلاو عشق من خودم مثلا بقی خودم ایمال حالا مثلا این کارم کار نشود یه کاری هر کاری برم به خودم ایمال رو دارم که محفظ آمد آمد آمد شد خیلی دارم از زندان برای خوش پس درست کنم من دوران سربازی تا خلی گرفتم یه سرباز؟ توی سربازی هم تافه هم آکس بگیره و بیچاره من زبونم حضرت حکومت شما دلید که شما میبینید که این آدم به درد کار فروشندگی نمیخوره ولی علاقه توش نیست اون رو باید تعریف کنیم تمام شاخصات شما رو داره علاقه رو علاقه چیه علاقه ایجاد کنید یه ایجاد کنید که اینا ما یکی نه علاقه رو بهش خریف کنی علاقه بودومان علاقه من بیه خودش بگم به این مثال درمی‌جنی ایکیویه تسته ایکیو کیتار از بایش پرده؟ ایکیوی زیر به کار زیر سی ست ایکیو به کار پروشن کنی کنی اونش زیر ۳۰ به درکار خوش نمی‌کن. یعنی توی این یعنی جنه‌ها نداره، ذات‌ها نداره، خوش حیجانی نداره، خوش ارتباط را نداره خوش طراغ علاقه مندی یا خوش این که بتونه خودشو معرفی بکنه، خوشبین باشه، خوشفت باشه، خوشی حیجانی توش نداره، وجود نداره، خوشنده, خوشنده نمی‌شه ما نمی‌گیدیم با ما دسته ۱۰ می‌گیدیم زیر ۳۰ و را خوشنده نمید. ی کد نورماله نورمال نرمال دیس نرمال تا کجا کجا و؟ درمی‌شود؟ درمی‌آید؟ از چیزی اگر بیاتو کنید بگیت شما بی بی که گفته یه تستیه که نشون میده چقدر کارمند و افادار میمونه همون که همونه؟ دیسک کجا هم شما شما, داره شما داره بوده بوده بوده؟ قامل.امل. شما به صحبت شما خوشا بگذشت. تست داره. من احترامم. چند دقیقه؟ شما. بووش. احترام شما وفاداری شما خوشبینی شما خوشبختی شما برداری وفاداری برداری شما مثبت اندریشی شما همین رو اندازه گیری میکنه مثلا نها کنید وفادار زیر 25 و ما برای کارمندی نمیگیریم چی؟ این در ایدشتون رو رو 15 تا فاکتور شما رو اندازه گیری میکنه 15 تا فاکتور شما رو اندازه گیری میکنه به این مادتها یه IQ داریم یه آئیکیو تست حافظت نه؟ هو اون هوش اجتماعی اون هوش اجتماعی ها آئیکیو مثلا من الان در صورت گفتم این کانون دیگه لازم نیست نا جوزه بگیست نا تا آخر اوم تو ذهنش میمونه مثال می بگیم آئیکیو بالاست ولی آئیکیو بایدس محفظت آدم ها نمیشه دنیا ثابت شده مثلا بیل گیتز در آدم خنگ بوده یا ارزان خیلی بنام شما مثلا از بیرون یا این کسی برق اختراع کرد اینترنتسون اصلا میگن سه سال توی کلاس موند آی خیلی پایینه این نه میگن که آی بالا بوده حالا یکی از دانشمندا بوده اخفا شد ما نورمال بین 90 تا بین 90 تا بعد یه کسی کنم روساش هست یعنی خیلی از شهرش دانشمند از ایسون مدرسه نرفته ولی اصلا. آره ایسون مدرسه مر... نرفته. آه. حالا میگم این تست تست خافزد است. خب با... ای کی باید معرفتان؟ ای کیو ای کی باید معرفت دادمش؟ گفتم یه تعلیم من به نی پرنامه دانش، به بیکت دانشگاه من دان. گفتم برو کسای کت دانشگاه قربان تحسیشان 6 سال پیش. اونا رو آنالیز کن، به من تحلیل بده. مثلا از دانشگاهی دانشگاه تهران قربان تحسیش داد با و ما از دید بالاییش با معدد بین 18 تا 14 با معدد زیر خب سه گروه یک دو سه معفق دارین آدام اینجا بودن خدا چهارده خدا با معدد رو خوانیدم کاروردی چهارده کجا است خونه دار شده؟ ارزم من که منشی شرکت شده یا یاشتو کارمند بانک شده رئیس شعبه یک بانک مثلا من به بانک در پیتی توی یکی ها این ایکیو، ایکو 15 تا فاکتور اندازگیری میکنیم خب 15 تا فاکتور اندازگیری میکنیم توی این تا فاکتور همه چیز هست یعنی نه انتا وفاداری هست، شما چقدر آدم وفاداری هستی؟ خوشبینی هست، خوشبختی هست، صبر و وفاداری، هدب و احترام هست، نزاکت هست، اینه بخواهم پونزده این که گرگویش این چون ایکیو اطماط به نمس هم میسنجه اطماط به نمس هم اطماط به هم ایکیو میسنجه خود اون تستو بگیرید بلیگه از ملاب تکنیکال فرصت یا یک ایک مشکلی که فروشنده از فرصت ها خوب استفاده میکنه فرصت چناس خوبیه نما کنید آقای علیه دایی اتبارش خوب نبود همان میدونید قبول فرصت چناس ها خوبیه یعنی اگر توی 10 قدم توپ می‌رفت می گل می‌زد. ولی مثلا می‌خواست از وسط زمین توپ برای 10 قدم، توپ <تصال> کار <ساره تصال> مثلا کرمی بود. توپ دور می‌داد. خدا بود. دو تا دریبل نمی‌شناس بزنه. ولی بخاطر خاطر هم همین پیدا کرد و با همین روشم مشهور شد. یعنی غیر ممكن مثلا توپ شما بندازید تو اون منطقه ایشون نمی‌تون توپ بره گل بکنه. ولی تو منطقه استاد برخورد شد. ولی بهش می‌گفتی از وسط زمین از پوش چینج دوتا دیپ بزن حتی خیلی ما بازی رو دیگه اصلا دروازه خالی یه نفر جللش رو نمتونست بزنه قابلیت، اینه اون یه فروشنده که فرصت شناس باشه مثلا تنور داغ نمتونه بچاسپونه یه فروشنده خوب بعد سه تا پفن بیژگی داشته باشه ستارتینگ، هنگلنگ، فینیشینگ خب، اسه یه مدل اسه یه سیره پرشنده ها استارتر های خوبی هم یعنی خوب میتونه شروع بکنه عالی اصلا شروع که میکنه لذت میبره تو معرفی کردم تو ارتعاط پرهار کردم همچین خوب استارت میکنه آدم کیف میکنه ولی هندلینگ ضعیف قیمت ها نمیتون فینیشینگ ضعیف نمیتونه کار برنده تمام کننده نیست تمام کننده خوبی نیست نه نیست مدیریت جلسه جلسه رو مدیریت میکنه، که تمام کنم دستی میشه، دست میشه، هندل میکنه کنه که چی بگم، که چی نگم، اینا رو هنده میکنه. کنم تمام کننده هست یه سای فروشنده هستم استارت خوب ندارم خب هندل ولی اتمام کننده تمام کننده های خوبی ام این نمی دونن قرارداد کی بزن رو میزنه موقعش رو می دونن اینا میگن اینا فرصتی اونا مثلا چون کارشون صراحتن این از چشاتو نگاه میکنه قرارداد آماده است بزن زیر میز امضا میکنه اون آنی به آنی کاملا شما آنالیز میکنید پازیا یا همینا تو پاسور بازی میکنید دیگه از چند سانت این دیگه خاص چشمش میکنه که مثلا یک برگی داره که سعی سای میکنه رو ببنید میندازی وسط ست میگیر ما میانگیم فینیشر های خوب حالا یه فرشنده هرفه, ای هرفه ای که ستاشم داشته باشه سی درصد این داشته باشه سی سه درصد از این سی درصد از این سی سه درصد هم از این یه درصد یه درصد چیه؟ همون زادت خب واسه من اصلا یه دسته کجا ولی میگم یه تو زاپش باشه. لا از همین از همین رو داشته باشه. نه اینکه چهجقتیه میشه. استارت رو. هندلی خیلی خوب می‌کنه. چانه‌زنی قیمتی می‌کنه ولی فینیشش هم خیلی عالی یعنی ولی استارت نمی‌کنه. نمی چون اصلا اتفاق نمی‌افته. استارت خیلی ما. استارت من میگه شما الان کار کن یا نه. به ظاهرش نمی‌رسیم، قیافش نمی‌رسیده اینکه اهمیت بده به لباسی که پوشیده. استارتر خوب نیست. بات فینیشر خوبی هم باشه. مثلا من دارم فروشنده استارت عالی هندل عالی میگم قرارا تیشه جراسه استوری می‌دیم نمی‌دونم نمیل چطور بکنم. خجال میشه قرار بده بازار رو میزنه یا روش نمیشه یا نمیتونه یا قابلیت نداره، قادر یا ما تکنیک داریم برای اینکه شما فینیشینگ خوب داشته یکی از غرش ها و یکی شما داشته اینه که سوال بستر پرسید خب شما پیشنهاد ما موافق. موافقه پرمودید؟ بله من قرار آماده بودم پیش شما همزه کنم یا یکی از روش هاش اینه که مشهد عمل انجام شده قرار بدی. قرار بدی. ما الان داریم با هم صحبت پایم. جنس طوراه داره میانیم فنیشین ایجاد میشه هاش همه ها هست هم تندلینگ میخوایی خوب بشید با حسات این بسید فرنو موزیکره کورس دراتا میذارم تا خوب فعالیت بکنید کار به مطالعه بکنید تندلینگتون رو غیر این فرصتی آورد فروشنده باید چش روشش باز بشه این باید تا رو جمع بکنه که این چشاش می میخونم که هست سریع ببنده بکنه بس خوب ببنده، سریع ببنده تماش کنه بید. لفتش نن کنی تا تنورداغا به دیر بشه دیگه نفته خیلی با زیاده روی کردن دست میدم یک آره یه, زیاده روی, یه زیاده روی رفته یه ذره زیاد روی نفته یه تو خیلی که هیچنه قدم لفتش به دفاع رسیده تمام شده باید همون درسته به چست کنید همونه باید میگه تا تنورداغا بای شمابش توی شرکت مشاوره مشاهره یک اومد برای استخدام این یک درصده رو داشت حنلیش هم خیلی خوب بود بعد به این مدیر گفتم اینو بگیر. من از شرکت اومدم میرون دو روز وقت بهش سنیزم بکنم شب خانم. احساس شب بهتر از این پیدا بکنم آنو دیه ماه داری میگریم گذنی از این تدمه میکنم از همین شرکت رفته و سه روز تا بهش بدن. این کمپانی رو تا تنهاقا ب چسبیمش می گفت همین الان مشهور ما این موقع برای استفا هست توی بعض تا به عنوان کار میکنیم نه در نیروی خوبی می... میگه کی کارو شروع کنم از همین سریع می چسب کنیم بره رفته با من نیروی حرفه ای بره رفت نیروی حرفه هر چهی گیر روی پیدا کنم به کریشتانگه محفللت رو با کمال طرلب فروشنده کمال طرف نباشه زیاد خواه نباشه بورشانده میشه. هرمو باید سعی کنه بورسانت رو داشته باشه. <تصفيق> نه که با بورسانت صادق باز زندگی بکند. رازی نمیشه. بیمشه بدم. وسیط مشه. و شرط مشه. مهارت همدلی. این پتی سی این مهارت باید بورشم داشته باشه. مهارت همدلی باید داشته باشه. همدردی با دیگران. این پتی همدلی. هم همدلی داشته باشه. هم همدلی داشته باشه. همون فروش نقش مشاوره واسه کنه نه فروشنده رو کارپستتون بذارید ان شاءالله ما زن فروشنده از این کارش مشاور کارخانه سازی ما فروشنده پیمانکاره این واژه های موقع طوفان می‌کنه واقعا مثلا من بخوام نماینده بیمه بود خودم چه می‌ذارم نماینده بیمه هر کی اصلا ما هر چی نماینده می‌بینندش فرار می‌کنن چون میاد بیچسه به آدم مثل کنه تا بیچس آره اشت کفتم بزن مشاور ریسک و سرماهه بذاریم شد چون واجه عوض شد خب بیمه عمر اکم را سرماهه بیمه یعنی که شما ریسک رو کم می‌کنید. اتفاق یه بار می دیگه با همون یه بار جریه ریسک را گریم واجه عوض می‌کنیم کاملاً کاملا دیگر میکنه. مثل این مشاوره بازه کنه، یه طرف باشه، اینجا جا خودش رو نهندازه، نه چست کنه، ای استرهاب نکنه این بازش رو پاساژه ها با میسته هم میگن، خانم بطاقید خانم بفهمید، خانم، مدل هم بخانم، ولی یه گوشه بامیست که مشاوره بشه، این جنسش، این بافتش، این بیژگیش، این, این, این وزنش، این به اینست اطلاعات کامل بهش میده اطلاعات کامل. مشاور. توانای دادن در دلها، نوشتیم توانای نفوز در دلها، دل نمیشتیم مثلا؟ تمرین، این توانایی رو باید داشته باشید، دل فرد بشینید تا کسی به دلتون نشینه ها، جس به شما بگم، یک لیار هم نشنه میدید هنی حاضر نیست در اختیار کسی در اینکه به دلتون نشست بازا میگم فرشنگه باید دل نشین باشد، محروم باشد، دل آدم بشینه صحبتی خاصی ندارم احساس بکنم که هر بارم استفاده کنم مثلا ما بگیم باید مثل مشتری باشی مثل مشتری واسه شی مثل مشتری وارد بونی مثل مشتری هر احساس بکنم که تو مشتری خدام احساس کنم تو مشتری باحال می کنم ولی احساس کنم تو فرق می کنی این احساس باید ایجاد بشه جسارت ریسک باید ریسک بسیار خیلی عالی، مثلا باید ریسک کنیم پروشانده بدون ریس کت فون مافتا کردن آدم های دنیا ریس پزیتیو آدمه چسای مافتان که ریس چون سرچ کنید ثروتمندترین آدم های دنیا ریس کرده مافتا یی آدم های دنیا ریس کرده بیشتر آمریکایی ها خاصه خیلی ریس. بله اصلا نمی تونه دیشون باشه بله این افت دیواره نوشته ریس با بدون برنامه عمل کامپیوتر زدن پاورپوینت و همه اختیار رسیده اکنون کشتنش. آره ریس بازیار نه گیم. چه با کل شرط بودن فارم میکنه؟ کل یه چهال شرط تر استای میکنه؟ مادیریت ریسک داشت. آره ریسک داشتن مادیریت میکنه. کجا این کار انجام میدیم مهمه کل یه چهال نه باشه؟ یه دفعه اعتماد کامل بکنیم چی داره نداره بریزی و چی؟ نه همینه. ریسک معقول ریسکی که بازی شده باشه ریس بازی را چهال بودن فارم میکنه. این برنخواد صد ریسک کرده به یکی از به این مشایف آمود سه سال دنبالش پنجام این روی شبته داره یک سال کار میکنه با اوقع سی سر تو اون شرکت برای اینکه پول اون رفته. تا پولشو رو تصدیان این هونگش همینجوری چرا چون ریسک کرده ریسک زیاد بدون برنامه خطر نکرد. ریست با با با بدون برنامه عمل کردن متفاقه ریست با برمام ساعت چند جد دوستان؟ آسا کراس بازرش درد یه با خداسان آشنایی با اطلاعات کامل از سنهت داشته باشه. هیچی به شما بیس، بیس معافیت فروش بسید شما داره. آشنایی شما با اون صنعت داره چرا ما میگیم مثلا میگم شیرین ساز بهترین فروشنده است خودش چرا؟ چون سنبتش نیشن هم میدونه چیه ذات رو میدونه چیه اطلاعات کامل داره یا مثلا میگیم سول ساز خودش که داره درگیره کاره ها مثلا من با گرامی آسان موتور کلی با آنگاه خرار می بهترین میگفت ما فروشنگاه های ما میکانیک های آس کارگاه ها کار می کنم میگم چرا میگه هر کی ماشین بخره میره به مکانیک مراجعه میکنه میگم به نظرتون به بهترین ماشین کدومه میگه فلان میرم می, می, می ولی نمایش کاردار مینیم من این کنیم ما فقط خوب پرزنت میکنم این و کس کی یک مطلبی رو که صنعت رو بهترین مکانیک فروشنده است من خیلی موقع ها به مدیرانم میگم شما به پرزنت بکنید کارآفنی میگم تو خودت برو پرزنت چیزی که تو میگی و چیزی که این میخواد 20 سال تجربه شما رو نمیتونه بریزه اینجا این به توضیح بده. شما میتونید 20 سال تجربه‌تون رو توضیح بدید. در واقع علممون رو زیاد بکنیم نسبت به کارمون. آره عفوا. دو, دو کار کنیم برای انجام بدیم. علمتون رو زیاد بکنید. بیشتر در آشنایی با اون صنعت پیدا بکنید. هر چقدر آشنای شما توی صنعت بیشتر باشه فرصت‌های مختلفی میشید. من مثلا هم روحشناسه رو بهتون زدم. گفت من خودم وقتی شما دیدم گفتم من واقعا ایوخان رو بخوامیم فعلا حال از شما می‌خریم شما شما تشخیص می‌دیدرین خب چیه چه خصلت چه خصوصیت آش هستن مدت سال مشتریان بتون سال مشتری مدیت می‌کنین این امتا قضیه طوزی دادن قابلیت امتا قضیه فلکسбилиتی های خیلی های آزنش با مردش با بچش با بزرگش با بی با با حجابش با پرس پولیسی، با استغلاق، این یعنی اعتراف فضیری بدون تحصب، بدون هیچ دو نسبت به سیاست، مذهب، با پیانبر ما با یهودی معامله میکرد، با مسیحی معامله میکرد این یعنی که ای اخ... تا... کاسب بود پیامبر ما، یعنی کاسب نبود تاجر بود، با حضرت کار، تجارت میکردن نیگه مثلا میگفت ما یهودی کار نمیکنیم، با مسیحی ها، آخرین اعتراف انطافه کاملا با تو کارتون دیده بشین کارتون لمس بشه یادگیری فناوری های جدید کامپیوتر این چیزی که تو کار فروش تصیفگذار حتما باشه ایجاد بچه تمایز برای کارتون احترام فره، فرهنگ و و هجار مشتریان، ها جز ویژینگی های شما باید خودت را در تبدیق نه اینکه من هستم تا خوددا رو تبدیقیم نه این افما نیست تو باید خودت با اون تبدق بدین وظیفه منه که خدا واشما تغییر بدم نه که مشتری باید حالیش باشه شعور داشته باشه بفهمه نه اصلا وظیفه من من باید ببینم چی هست چی نیست کجا هست چیکار یکی چه یک از آگه... چیز رپورتاج تلویزیونی چیزی دیدم خیلی جالب بود موجی رفته بود کنار پروفسور سمیه وارد شده بود <تصفح> پروفسور سمی مصاحبه بکنه خیلی جالب بود میگفت آقای دکتر آقای پروفسور کنار من هستند به شما جوابه درسته؟ نمیگم من کنار ایشون هستم یه شخصیت بین‌المهلی به اون عظمه کنار من هستم خدا یعنی یعنی صدا سیما کوچکترین اصول مجدگاهی رو یاد باید خبرنگاه نداده خیلی صدا سیما خندم گرفت گفتم. منشی رو جدی بگیرید، حالا من بیده واقعا فرستر نیست، فرستش بود خیلی مروحای زیادی هست، خریدهای فروش، گیده های فروش، من دو جایی کار داره منشی های مروری سازنسان رو جدی بگیرید که کارتون هست چی ها رو مستاند؟ منشی ها، منشی مسئول اصول فهمون مذاکره، کتاب مذاکره هر جدید هر جوری توسید فن و مزاکیات را بکنید. فند و مزاکیات را باید باید خسته نباشید. بسید. مرسید. بسید درستتون کنید.